موفق باشی ان شاء موفق باشی ان شاء الله بفرمایید بفرمایید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 و نتوکلوا <تصفيق> علیه و نسترخفر و نشدو الله علیه إلا الله وحده لا شريك له وان محمدان عبدو و رسولو شالل الله عليه و آله سکیمابقیت اللهی فی ارث قال الله راضين في كتابه الكريم اعلمو ان الله يحيي الارض بعد موتها اللهم كن لوليك كل حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی ها به ساعه و فی کل ساعت ولیدین و خوافده و قائد مناش را و دلیدن و عین حتی توسکنه اردک توعا و, و تمتعه فی ها خودم به همه عزیزان دا در و تقلا توصیه میکنم بحثم پیرامون آیات مبارکه است که زمینه قیام امام زمان عرباق نال و الفدا و جمبه متنوعی که پیرامون این مسئله جهانیست به در قرآن کریم مطرح شده است انشاءالله به هو و قوه خدای متعال بحثم پیرامون این اصل و اساس است آیات شریفه ای که در قرآن در این زمینه آمده به چند دسته است یک دسته از آیات ظهور دارد در تحول جهانی احادیث هم هست ولی ظهور آیات نیست از روایات یک دسته از آیات اون چنان ظهور ندارد ولی روایات صحیح و معتبر دارد یک دسته از آیات ظهور ندارد و روایت هم دارد اما از باب تعویل است نه از باب تفسیر بنده بحثم امروز پیرامون آیات شریفه است که میتواند گفت آیات اشاره ای داشته باشد ولی ظهور اون چنان نداره اما روایات صحیح و معتبر برانه هست این آیات در سوره مبارکه حدید است، از آیه هفته به بعد عوض و بالله من الشیطان رتیم علم یعنی لذین آمنون انتخشه قلوب هم لذکر الله آیا زمانی نشده است که دلها به یاد خدا باشه و دلها قصی و سنگ نباشه نرسیده از با زمان؟ بلا یکونو کل لذین اونتو کتاب من قبل کن فقستت قلوب هم کسانی بودن قبل از شما کتاب بر اونها نازل شده بود از پیومبر دور شدن از نبوت دور شدن فقصد قلوبهم دلهایشون قصی گردید فطال علیهم الامد زمان طولانی شد و نتوانستند یا نخواستن که خودشون را وحس کنن به بیت وحی و بیت نبوت در اثر سنگ دلی، در اثر گناه، ظلم دروغ، زیر پا گذاشتن حقوق و مردم به فسق افتادن، به گناه افتادن، خدای متعال پیامبری برای اونها فرستاد، به اونها رو نجات داد در این زمین روایات معتبر به صحیح است که این منظور از این جمعیت امت اسلام است که میگوید آیا از اونها یاد نمیگیرید آیا از اونها دست نمیگیرید به چه بلاهایی مبتلا شدن تا پینبر دیگر آمد شما چنین نباشید نسبت به امام زمان مطمئن باشید معتقد باشید شک نکنید خالت انتظار داشته باشید حقوق مردم رعایت کنید قصاوت قلب نداشته باشید قصاوت قلب که در این آیه شریف آمده و قصد در آیات دیگر هم هم آمده است کسانی که قصد خلوب هم دیگه ختم علی سمعهی و علا افسارهی خشاوه و ختم علا خروبه در آیات مختلفه چشم دیگه کور شده حقیقت رو نمی بینه گناه رو نمیبینه کشتا رو نمیبینه ظلم رو نمیبینه این سیری که به صورت او زد به گناه نمیبینه حرف بدی که به اوزد نمیبینه حقی که همسر به او داره نمیبینه حقی که رحم به او داره نمیبینه حقی که دیگران و همسایگان به او دارن نمیبینه بینه کوره تبدیل شده از چشمش بسرش تبدیل شده از به اما, اما در حال اماه یعنی چشم کوره و گوشش هم نمی شنوه. گوش داره ولی نمی آه آهو نمیشنوه. ناله رو نمیشنوه هیچ میبینه کشته میشوند این چنین و اون چنان ولی نمیشنبه. یعنی گوش کره قلب هم بسته هست اقلاقه خلق قلبه قلب گرفته هست نمیفهمه درک نمی کنه این آیات شریفه در روایاتی نیست که این روایات معتبره به بنده در اینجا دو حدیث معتبر و صحیح رو خدمت شما عرض می کنم حدیث اول در قیبت نومانیست یک حدیث دیگر هم در کمال دین است. اون حدیثی که در کمال الدین صدوب از این است ان علی ابن خاتم ان حمید ابن سیاد ان الحسین ابن محمد ابن البته متن داره ان حسن ابن محمد علی ابن به نظر میرسد علی نباید باشه محمده حسن ابن محمد ابن سمائه ان احمد ابن حسن میسمی ان سمائه که این سمائه ابن مهرانه و غیرهی غیر سمائه اینها نقد کردند سمائه و غیر سمائه نفت کردن ان عبد عبدالله عليه السلام از امام صادق علیه السلام و که فرمود ندلت خواهده از آیه فلقا ام محمد این آیه خریمه نازل شده از درباره امام زمان قدوم آیه همین آیاتی که از کردم سوره مبارکه حدید که باز تکرار کنم متن آیه شریفه از کردم آیه 17 و 18 سوره حدیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیب علم یعن للدین قلوبهم لدکر الله و ما من از و لا یکون کاللزین او کتاب من قبل فتال علیهم العمد زمان گذشت از نبوت دور شدن و دروغ و گناه و فساد در هاشون به زندگیشون رختاد و نفوذ کرد فقصد قلوبهم هم دلهایشون شد و کسی و من هم فاسخون اعلموا أن الارض اعلمو ان لم بعد موتها قد بينا لكم لعلكم تعقلون روایت دارد می‌فرماید نزلت آزه الآی آزه حزای فی یعنی همین آیه 17 به هیچ دهی سوره مبارکه حدید اون روایت این هست که می‌فرماید که در امام زمان نازر شد که خوندم برای خون کللین اون تل کتاب من فطال علیه ملعمد زمان طولانی میشه شه قلوبهم قلوب هم دل قسی می میشه. گناه در جامعه زیاد میشه میشن سنگ دلی ناراهتی ها رو میبینن اعتنا نمی کنن آخوناه ها رو متاهه می کنن نمیدن حقوق را تزیع می کنن اهم میگرد دن اصلا باکشون نیست در تزیع حقوق باکشون نیست در گریه ها و نال ها و نا آه ها باکشون نیست بود دل آم شود قصید قصید هیچ چیز رو نمیتو با دیگه ببینم روزگار این میشه به کسی رو من هم فاسقون بعد روایت شریف دارد که میفرماید که این در چنین نیست در روایت همین حدیث با همین سند در غیبت نعمانی در غیبت نعمانی سند چنین علی ابن حاتم عن همین ابن زیاد عن ال ان حسن ابن محبوب همین ابن زیاد ان علی ابن حسیل ابن محمد ابن سماء امون حدیثه ان احمد ابن حسن میسمی ان, ان ابن محبوب ان مؤمن تا که این حدیث رو نفت کرده که فرمود امام صادق امام باقی فرمود اعلمو ان الله یحیل از بعد موتها یعنی یحیل از زوجل بالقائم بعد موتها بعد از اینکه بعد از اینکه زمین مرد و بعد از اینکه دیگر این چنین شدن شیعیان بعد در این حدیثی که در همین کتاب غیبت نومانیست می که شما شیعیان تردید نکنید شک نداشته باشید بر اینکه که چنین روزی بر شما پیش خواهد آمد شما خواهید دید این روز رو شک و تردید اصلا در این مسائل بحث کردن و زیت ولعله کردن با این که در جامعه ما میبینیم مسئله قیام امام مهدی علیه السلام در دنیا با مشکل روبرو شده گروههای های زیاد دنبال همینند که میخواهند مسئله مهدویت رو که به معنای قیام است و حکومت جهانیست و این حکومت جهانی مکتبه مکتب وقتی می زنده باشه که هواقش مردم رو بکه مکتب وقتی می زنده باشه که نیاز جامعه رو بکه مکتب در هر حال وقتی مکتب است و زنده است که انسان رو توصیف کنه انسان رو تعریف کنه صفات انسان رو بیان کنه کردار انسان رو بیان کنه وظائف انسان رو بیان کنه چون تکلیف یعنی تکامل انسان خلقت یعنی ارزش انسان اگر انسان نبود اگر تکامل نبود خلقت نبود خلقت برای رشده خلقت برای این است که اصماع الحسنان الهی همه بروز کنه ظهور کنه خلقت برای اینه ولی زاز که در این آی شریفه هیچده صوره مبارک حدید در روایت می‌فرماید مقصود مهدی موعود ارواحنا له الفراس اعلمو أن الله یهی الأعص بعد موتها فخر راضی که از علمای بزرگ اهل السنته در زید این آقایی کلمه در کتاب تفصیلشون نمیستد حاضا تمثیلون این است که خدا زده گفته از زمین بعد از اینکه که موت شد زنده میکنیم زمستان و بهار گفته این مثاله زمستان به ریخدن بعدها مثاله تابستان به سبزبارها همه مثاله مثال از برای کوه و برای ایمان برای قصاوت و برای لینت برای قذب و برای رحمت این مثال جامعه است. فخر رازی میگه خدا چنین خدای چنین نوزی رو خواهد آورد در تفسیر آلوسی با اینکه که خیلی متعصده است به خلط. ولی نسبت به این آمیات احمه علیه السلام اون تا از صبح رو اونچنان به خرچ نمیده ولذا آروسی هم همین حضر سخت رو میزنه میگه این مثالیه نیست که چنین روزگاری خواهد آمد یعنی انسان تو همباره زمستان میبینی به تابستان و به ها بهار آبادیست بعد از خزان زمستان در سفری که در واتیکان داشتم یک ملاقاتی داشتم با راتسینگر راتسینگر اون زمان رئیس کمیته علمی واتیکان بود و بعد مقام پاپی پیدا کرد و پاپ شد در مسیحیت کاتولیک با او همین بحث و بنده می کردم می شما چطور می گویید ای نمرگم وقتی دیایت قیامت خواهد بود ما میگیم حکومت خواهد کرد ما میگیم وزیر امام مهدی علیه السلام خواهد بود شما به چه دلیل میگید قیامت خواهد آمد نزودش در قیامت خواهد بود گفت خوب در انجید ما چنینه در انجید ما این است که به طول کلی همه چیز مرده است زمین مرده است درختان مرده است با وجود او زمین زنده خواهد شد گفتم این تعبیر در عین قرآن کریم راجب به مهدی علیه السلامه <تصفيق> و همین و همین آیه مبارکه آی مبارکه‌ای که ارث کردم برایشون خوندم اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بیننا لنا لكم این که گفتم صحیح و معتبر داریم که قیام محدی موعوده به این معنا که زنده خواهد شد حرف درستی یعنی زمین در اصل گناه خواهد مرد زمین در ثر فساد خواهد مرد آدم دروخ قوت پاش زمینه ولی زمین زنده است مرده است چون خودش مرده است آدمی که ظلم میکنه رو زمینه زمین مرده است دیل پاش ولی چون خودش مرده است آدمی که قسی ذل قلبه رو زمین واسطاده رو زمین نشسته ولی زمین مرده است چون خود این آدم مرده است آدم ها وقتی مرده بودن زمین بی اثره آدم ها وقتی مرده بودن روح نداشتن انسانیت نداشتند، فضیدت نداشتند، زمین مرده است. ایشون متنبه شد گفت این مطلب به نکته ایست باید بعدا راجب انجیل با شما بحث کنیم به هر حال اینه قرآن کریم میفرماید فرماید دنده می شود زمین خب ما که شیعیان هستیم ما که پیرو اون حضرت هستیم در اون روایت هم امام باقر میفهمد این در زمان غیبت این نظر در قصف غیبت قصف قیبت است که دلها قصیحا خود شد پناه به خدا قصف غیبت است که دلها به تردید خواهد اختار از غیبت است هست که انسانها به گناه خواهن افتاد این از به عزیزان از منتظران باشیم زندگی رو تمیز کنیم خانه رو تمیز کنیم اتاقمون زنده باشه خانهمون زنده باشه چشممون بینا باشه گوشمون شنوا باشه قلبمون بیدار باشه اون وقت از که به انتظاریم عوغ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اینا اعطاینا کل کوفر فسل در رب بکون خر اینا شانع که بول افتر الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام و, و علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و ما الله في اللهم صلّ على محمد بآل محمد، اللهم صلّ على علي أمير المؤمنين، صلّ على ستيعة الكبرى، صلّ على الحسن والحسين سبطي الرحمه، صلّ على علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر. و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم الاسکری وجده که علا و امناع که بلادک خودم و عزیزان دا بوره و تقوی توصیه می کنم در آغاز سخن در خطبه دوم حدیثی را عرض می کنم و اون حدیث این است همینطور تو که می فردا روز سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام است بنده حدیثی از حضرت عبدالعظیم عرض میکنم و دو اون حدیث مطلبی دارم بعد هم مطالب دیگری است به طور خلاصه در حدی که زمان فرصت کنم اون حدیث این است به استادهی ان عبدالعظیم حسنین نقر می از قلیمان ابن جعفر جعفری میگوید گوید تو و بن جعفر علیه استرام از امام صادق با امام بن جعفر شنیدم که او نقر می کند از قدرش امام صادق علیه استرام و او از آب العابدین علیه ابن حسین و او از امام حسین نقر می کند که امام حسین فرمود مرد و امیگل مؤمنین علیه سلام بره شده امیگل مؤمنین به یک نفر مرور میکرد گذشت دید داره حرف میزنه به فضول کلام حرف میزنه خیلیم حرف میزنه فوقف و ایستاد یه خوده حرف هاشو زد بعد امیگل مؤمنین فرمود او یا حاضر. ای آدمی که اینقدر حرف زنی این نکر توملی علا حافظهی که کتابن علا رب بک تو املا میکنی کنی بر دو حافظه یعنی دو ملکی که طرف راست و چپته تو املا میکنی، اونم می نویشت. تو میگویی اونم مینویسد. نویست این نکه توملی علا حافظهی که دو محافظه ای کتاب، این کتاب ماله کیه بک. این کتابم مال خداست در دست خداست فتکلم حالا که کلماتت رو می از دو نفر که حافظته برای خدا قرار میده کتاب تو پیش خداست فتکلم علیه فتکلم به ما یعنیک حرف بزن به اون حدی که برات مفیده به ما یعنیک و تا مالا یعنیک حرفی که مفید نیست بلکه موزه نذار من این بنده یه ارزی دارم نسبت به جامعه خودم و سیاست داخل کشور کشور یک بحث الان داره که حالا این بحث رو دو سه کلمش رو عرض می کنم بعد نیام این حدیثو رو معنام کن بحثی که هست این از که میبینیم دنیا درست خودشو بسیج کرده علیه کشور اینکه علیه کشور بسیج کرده نه علیه سرزمین ایران بلکه علیه جمهوری اسلامی و نه علیه مردم بلکه که علیه مردم با این عقیده با این عقیده ای اسلام و ایمان و شجاعت و مقاومت و بسیرت در برابر دشمن این براشون سنگیه این مساقلی که الان در دنیا ملاحظه می کنید، از یک طرف می بینید که موشک خود یمن داره یا از دیگران میگیره و بعد به ریاض فرطاب میکنه اون وقت امریکا مردک میگوید که ایران این موشک رو با اینکه که کارشناسان همه میگویند ساخت این موشک نشانه هایی که درشه مال ایران نیست از ایران نیست ولی در این حال این چنین میگه. چرا؟ برای اینکه که میخواهند جهان رو علیه ایران بسیج کنند با هم حرف بزنند بسیج کنند علیه یک دیگر ایران رو علیه ایران این برنامه این چنین؟ خودشون میان به سعودی ملیارت دلار، صدا به سعودی میدن پول سعودی که پول ملت بیچار است از این حاکم بدبخت میگیرن و صرف میخونن در کشتن مردم یمن در بیچاتر کردن کشور یمن در این که کشورهای اسلامی رو همه رو به هم بدیسن جنگ رو همه رو در کشورهای اسلامی ببرن این, این ترامپ خبیث که میاد ادعا میکنه میگوید که ما بنامون است که در مرزها و خارج از مرزها عدالت و پاک ما بنامون خارج از مرزها دستورات پاک کنی این شعار دروغ میده این شعار و این دجار شار دروغ میده کس و میخواهد تمام فرومایگیهاش رو با این شعاراش جبران کنه، با کارهایی که کرده و امریکا رو کوچک کرده و ملت امریکا رو در برابر این همه حرفا که زده خار و کرده برای این که خودش رو توجیه کنه همچه حرف میزنه یا برای این که خودش رو توجیه کنه میاد بگه مقدر حکومت و پای تخت سحیونیسر غیر قانونی در قدس تبدیل به قدس مگه این کار ممکنه با این که این با این حرف دنیای اسلام و علیه خودش بسیج کرده. این حرفایی که میزنه برای این که میخواد خودش رو توجیح کنه قلطهای خودش رو توجیح کنه با اینکه که روی قلطهای دیگر میگذاره امریکا رو باز میکنه خیانتهای گذشته رو روشن میکنه که ری ضد اسلام بود همان طوری که امام فرمود شیطان بزرگ ضد اسلامه این... تمام هم محکوم کردم، محکوم می کنن. اون هم سازمان ملله، اون هم شورای امنیت اون هم وتو کردن امریکا این دنیای این دنیای پر از خساوت پر از فساد، فقص از خلوبهم دنیا این شده بسیج الان علیه ایرانه علیه جمهوری اسلامی ایرانه چون ایران داره میگه انسانیت مطرهه ایران میگه شما منطقه رو به خاک و خون کشیدید جنگ رو در تمام منطقه آوردید ولی اینها کار خودشون البته خدا هم کار خودشون میکنه. خدای متعال نقشه ها رو عامل و خنثا اینها چقدر امید به داعش داشتن آل سعود چقدر امید به داعش داشت چقدر هزینه کردن ولی داعش مرد به جهنم واسه شد الحمدلله همین آدم ناادم و قبل از اون ریش قبل می گفتن اراق باید تطریه بشه آدم هم که کاشته بودن اونجا وادار کردن که اعلام به تطریه کنه ولی از بین رفت مورد فکر تطریه از بین رفت تطریه رو استقلالشو به همدلله به درد برد چیز ها خونریزی ها این شجاعت و ایستادگی در برابر دشمن بنابراین این وضعی است که الان دنیا داره در برابر ایران خب ایران باید چیکار کنه ما باید واقعا از نظر فکر و بصیرت و آشنا بودن به زمان بیدار باشیم ما باید جوری باشد که این مسائل رو خوب درک کنیم ببینیم دنیا در چه حالی است با ما چه کار می‌خواد بکنه اینو بفهمیم و بعد ببینیم این همه جمهوری اسلامی شهید داد این همه خون داد برای اینکه جمهوری اسلامی رشد کنه به اصل بنده اگر تعبیر کنم جمهوری اسلامی حرمه تعبید افراطی نکردم حرمه چون اون چیزی که در جمهوری اسلامی است اسلامه و فاطمه هست قصده مهدی عرباهون حالا اون چه در جمهوری اسلامی این است که باید اسلام پیاده بشه این قانون اساسی این قوایی که ما داریم بر همین اساس مسأله این این بنای اسلام به جمهوری اسلام بنابراین وظیفه ما برگرداند به همون حدیثی که عرض کردم خاص که آدم می‌شناسه حضرت عبدالعظیم نقل کرد از چند نفر مرکن از موسط نجرفت هر کدوم از امامان نفتن از امیل مومنین رسید است که فرمود به اون آدمی که حرف میزد، فرمود حرف دو که میزنیم، ملکی که دست راست تورت می نویسن تو تملی تو املا میکنیم کتابی رو که این دو نفر می نویسن الارب بک به سوی خدا تو داریم کتاب می فرسی. یعنی میمانه باقی میمونه پس هر ا باقی مونه، حرکت ها باقی مونه، ملت ما هم از هم ملت فداکاری است حالا فنده میخوام از این تریبون یک موعظه ای کنم هیچ نظریم ندارم از باب تکلیف موعظه میخوام بکنم به عنوانی که پایگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرضم این است که نظام جمهوری اسلامی که حرم به تعبیر بنده با این همه فداکاری که شده این نظام نباید تضعیف بشه ارکان نظام نباید تضعیف بشه اونهایی که در رأس نظام هستن نباید تضعیف بشه نظام کار خودش رو میکنه البته قبای سلاس کار خودشون رو می کنن. چه مجریه چه مغننه چه قضاییه کار هم وسیع کار هم مشکله مخصوصا قبعه قضاییه کار خیلی وسیع و مشکله این کار مشکل رو داد تن دارن دارن اداره میکنن. خب اگر آدم کسی حرف داره با دولت حرف داره با مجلس حرف داره با قوه قضایی حرف داره خب این حرف رو در جلسات خصوصی بزنه این حرف رو هم جلسه خصوصی رو کافی نمتونه چند نفر وارد آشنا دانشمند با سواد حکم یک یه جلسه دعوت کنه ده نفر بیشتن و رسد بگه من حرف همینه شما حرفتون اینه نه این که آدم همین جور حرف بزنه همین جور حرف زدن بعد هم چه بسا حرف خلاف باقی مطرح بشه به چه بسا رسانه ها یه حرف خلاف باقی رو ده تا دروغ دیگه روش بگذارن بگذارن جامعه رو متزلزل کنن دستن در کاران دل دلترد کنن مشکلات برای مبدوم ایجابت ملت رو تکن بدن این ملت خوب این ملت فراکات این ملت ایسارگر بکشونن کار رو تو ملت تو جمعیت حق بر اینه واقعا وقتی که انسان همه ما همه ما در سیل چپس جمهوری اسلامی به سر میذاریم رهبری این نظام به چطر این نظام که انشاءالله الله به دست امام از روحی فدا آچلن انشاءالله برسه این حقیقت جامع و همه دهم همراه او هستند بنابراین اونهایی که کار میکنند زیر این چتر در تمام عباد و وسائل کشور کار می باز با زحمت هم کار می کنن. من نمیگم انتقاد ندارن بنده دفاع نمی کنم عرض نمی کنم انتقاد نیست انتقاد دارن در جلسات خصوصیت به, به اصل جامعه نکشونن کار رو این به جامعه کشوندن حرفو زیاد میکنه کنه حرفا رو بیرون می بره. دشمند رو خوشحال میکنه میگه در ایران چنینه در کشور چنانه با اینکه که به با بودنی رهبری آگاه عادل فقیر دامت الله گزندی نیست مشکلی به همدالله نیست ولی در این حال باید متن جامعه رو نظام چون اسلامی رو شیان کشور و اسلام باید همه حفظ کنیم و دیفه این است که همه اون نگه داشته باشیم همه این را باید ما حفظ کنیم خودم و عزیزان را ببرم به تقوی توصیه میکنم، و اونچه من عرض کردم در اینجا فقط خواستم موعظه کنم ارز کردم در نماز جمعه جای این نیست که من بگم کی چیز کی چیز در نماز جمعه این نماز جمعه جای موعز است بنده به عنوان تکریف چند کلمه عرض کردم که وظیفه الان حفظ کشور به حفظ نظامه به حفظ ارکان نظامه به حفظ قوای نظامه و اممیدیت دادن به قوای نظامه این وظیفه ماست خودم و عزیزان دا ببرم به تقوی توصیه می اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و العصد انن لا لفی خوست الا الذين آمنو و عمل السالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصدر.